À l'attention de autorité consulaire française à Téhéran. Objet demande de cours. دار ویزا دتو قوجته شرف ندارند اینها، شرف ندارند حالم دارد به هم میخورد از این کلمه قوجته چرا من چرا برای من صد بار زنگ زدم گفتم چه شد زودتر بگویید دیگر گفتم نمیشود صبر کن گفتم نمیشوده شما آینده ای مرا خراب میکند یعنی چه که نمیشود گفت منتظر بمانید قطع کرد شرف ندارند ها اینطوری نمیشود باید بنشینم درست فکر کنم باید یک راهی باشد، مگر میشود نباشد. دو ماه است که کلاسها شروع شده. باید همین امروز نامه را تمام کنم. دیر است. دو ساعت دیگر باید بروم خانه یک بچه احمق دیگر به میم درس بدهم. بعد بیایم حاضر شوم برای مهمانی لیلا. یکی نیست بگوید حالا مهمانی گرفتن از چی بود توی این هیروبیر. فکر کردی همه چیز مثل قبل میشود اگر مهمانی بگیری؟ احمق و ساده است. این خودکار لعنتی هم که نویسد. حالا من خودکار از کجا پیدا کنم روی این میز شلوغ؟ کاغذها را میزنم کنار نیست جامدادی را خالی میکنم نیست در هیچ کدام از کشوها هم نیست هیچ جای این میز کوفتی یک خودکار پیدا نمیشود کاغذها را از روی میز بر میدارم و میکوبمشان به دیوار کوبیده نمیشود مثل برگهای های پاییزی دیروز خیابان پرواز میکنند و میچرخند و میریزند زمین هی بابا رویشان کوبیدم و خوردهشان کردم خودکارم همین جاست. زیر برگی لعنتی گواهی اشتغال بکارم. پس بس از دیگر ظهر شد باید آرام باشم باید بنشینم در آرامش فکر کنم باید نامه را درست بنویسم مدم موسیو جلنوغ دو بوزکیق پور صولی سیته و تخو بین و الو بنفیس دن دو زیم اگزمان دومدومان دو ویزا دتوت قوشته اینطوری که نمی اینقدر محترمانه کاش زبان آدمیزاد حالیشان میشد. آن وقت می مادام موسی و جان هر کسی که دوست داری ویزای مرا بده من آدمش نیستم تحمل این مسخره بازی ها را ندارم قلبم از دیروز دارد هزار بار در ثانیه می تپد میکنم می میرم از غصه می آخر به من ویزا نداده اید پس به کی داده اید کی بیشتر از من جان کند برای این دکترهای کوفتی کی همه گذاشت اصل میزدم به سیم آخر میگفتم گوه خوردید به من ویزا ندادید بی شرفا آینده‌ام دارد دود میشود جلوی چشمایم با این فصل نمیتوانم چیزی بنویسم چایم یخ کرده دیگر نمیشود خوردش مامان آمد گذاشتش روی میز اول صبح بود از وقتی بیدار شدم از اتاق بیرون نرفتم یادم بود که جمعه است و کار ندارم اما یادم نیامد دیروز چه شده هی به سقف نگاه کردم و فکر کردم چم شده که اینقدر سرم و همه جایم درد می کند. یادم نیامد. همش آهنگ آریزونا دریم در مغزم تکرار می شود. و فهمیدم چی شده و سقف اتاق انگار که زلزله آمده باشد ریخت روی تنم. بعدش هم یادم آمد شب چند ساعت خوابم نبرد و همش به دیوار و سقف و پستر فیلم امیلی روی در کمد نگاه کردم. پاهایم و دندانهایم درد میکردند. موهایم حتی ناراحت نبودم دیشب اصلا هیچ حسی نداشتم فقط گیج بودم انگار خودم نبودم انگار مثلا شنیده بودم ویزای سایه رد شده بعد هم گفته بودم بودمآخه بیچاره و بعدش هم یادم رفته بود اما صبح که بیدار شدم قلبم هی میزد از جا بلند شدم از اتاق نرفتم بیرون صورتم را هم نشستم صبحانه هم نخوردم مامان در را باز کرد دید بیدارم نشسته بودم پشت میز و موهایم رو مشت می کردم توی دستایم. با خودکار آبی صد تا خط کشیده بودم روی کاغذ های روی میز. ماما فهمید یک چیزی شده اما چیزی نپرسید. عقلش می رسد. اینجور وقتها که اخلاقم سگیست چیزی نمیپرسد چای را رو گذاشت روی میز. گفت صبحانه نمیخوری؟ گفتم نه. یک خط دیگر کشیدم. کاغذ پاره شد. ایستاد. سرم رو ریشه های فرش را با نوک دمپایهایش صاف کرد منتظر بود حرف بزنم نزدم گفت رامین گفت زهی زده گوشیت خاموش بوده گفت بهت بگم اگه راه شلوغ نباشه تا اس میرسه که بیاد مهمونی لیلا انگار کسی نبوده جاش کشیک واسه که دیروز راه بیفته جمعه صبح که راه شلوغ نیست هست نه نه انگار خم شد دو کاغذی را که صبح پاره کرده بودم از روی فرش برداشت مهم نبود. چه میفهمید چه نوشتم به فرانسوی؟ صدای مچاله کردنشان در مشتش آمد. هی hey, ایستاد. هی hey, من حرف نزدم. آخرش گفت لیلا میرزا قاسمی شو درست کرد؟ برم ای زنگ بزنم ببینم چیزی نمیخواد برش درست کنم با خودت ببری. تفلک با این همه مهمون رفته سر کار. کی میری؟ نمیدونم. در را آرام بست و رفت. چرا دارم سر مامان خالی می تقصیر اون که نیست؟ گیرم راضی نبوده به رفتن من هیچکس به اندازه او از نرفتن من خوشحال نمی شود. اما تلفن که نکرده بگوید مرا رد کند؟ باید از اتاقم بروم بیرون بگویم برایم گل گاو درست کند باید آرام شوم باید بنشینم درست فکر کنم ببینم چه بلایی سرم آمده؟ جان می شوم توی خودم اینجوری به شبانه گفتم چند تا کار دارم، تو روخ گفتم، جا نمیشدم توی خودم، انگار سرم را کنده بودند، مثل حنا مرغ مادرجان. مادرجان چادرش را بست دور کمرش، گردن حنا را گرفت، نوکش را برد زیر شیر آب، بعد گذاشتش توی پاشویه. پایش را گذاشت روی بالهایش، چاور را از زیر چادرش درآورد و گردنش را برید، حنا بالهایش را رها کرد، پرید خونش پاشید به لباس مادرجان مادرجان خودش را پرت کرد عقب تخت سر نجس تاکودی. مثل هنوز شده بودم دیروز. میخواستم خودم را بکوبم به زمین و در و دیوار و لوله هست تا همه پرهایم کنده شود خونها پاشید دور حیاط مامان دوید توی ایوان و جلوی چشمایم را گرفت گفت خانم جان آخر جلوی بچه مرغ سر می باری؟ بلند شدم شبانه گفت کجا میرویه یهو؟ گفتم کار دارم تا دم پله ها دنبالم آمد گفت کجا میروی؟ خوبی؟ گفتم آره دروغ گفتم خوب نبودم رفتم بیرون تا عصر راه رفتم در خیابان پاهایم رو کوبیدم به زمین برگ های زرد بدبخت روی زمین رو خرد کردم پخششان کردم در هوا بعد نشستم روی لبیه جدول موهایم رو مشت کردم توی دستم. موهای کوتاه از مشتم در میآمد. سیلی خورده بودم انگار. گفته بودم خان اجازه من نبودم. گفت غیر از تو کی میتونه از ناودون بره پشته بوم؟ گفتم من نرفتم. گفت خجالت نمیکشی ببین چه کسافتی صفر رو برداشته؟ چکه میکنه کلاس خیس آب شده. چانه ام را گرفت در دستهایش. گفت چرا لانه کبوتر رو گذاشتی توی ناودان آن؟ یک قدم رفتم عقب. گفتم میگویم من نبودم. صدای بلندی پیچید در گوشم. چشمایم سیاه شد. مامان گفت دستش بشکند. فرداش نرفتم مدرسه. هرچه مامان گریه کرد و دعوا کرد نرفتم. میگفت مثل عمه میشوی میفتی گوشه خانه. گفتم نمیروم سر کلاس او. هر روز دستم رو میکشید و به زور میبرد مدرسه. فرار میکردم. از روی دیوار میپریدم و می آمدم خانه. صدای سیلی یادم نمیرفت. ایستادم گوشه دیوار حیات و موهایم را دست دست توی مشتهایم می‌گرفتم و میکشیدم. یک هفته بعد مامان آمد مدرسه و کلاسم را عوض کرد صدای همان سیلی بود که از پشت تلفن آمد توی شرکت پشت میزم نشسته بودم. شماره سفارت را که دیدم از جا بلند شدم رو به پنجره ایستادم قلبم مثل قلب مرغ عشق رامین که در مشت گرفته باشم میزد. هممازم بود، شبستری. با همان صدای سرد و کری. آن چند ثانی که اسمم رو پرسید و فهمید خودمم زمان انگار که یخ زده باشد هزار ساعت کش آمد می توانستم در اون فاصله همه خورمالوهای درخت روبرو را بشمارم می توانستم ده تا جدول کامل کنم برای مهندس مقدم هی در دلم می گفتم بگو بگو دیگر بگو کی بیایم ویزایم را بگیرم کلاس هایم شروع شده می خواستم بپرسم سفارت تا کی باز است گفتم همین الان می روم ویزا را میگیرم چرا بخوید بگذارم برای شنبه؟ بعد میروم تا ظهر پنجشنبه آژانس ها نوسطن بریتم رو اوکی میکنم. خیلی عقب مانده بودم از بچه های دانشگاه. باید زنگ میزدم به رامین تا بیاد پیش مامان که بیتابی نکند. لیلا و شبانه هم بیاین برای خداحافظی. چمدانم هم که از دو ماه پیش آماده بود. گفت متاسفانه دولت فرانسه با ویزای تحصیلی شما موافقت نکرده. سیلی خوردم. یخ کردم. نشستم. نشانده شدم. نتوانستم چیزی بگویم. باید میگفتم. میگفتم آخر چرا می میگویید؟ چرا عذیتم میکنید؟ باید میگفتم حالا من چه کار کنم با این روزهایی که جلوی چشمایم دود میشوند و میروند به جهنم؟ باید میگفتم من دیگر اینجا چیزی باقی نگذاشتم برای ماندن. نگفتم. نتوانستم گفت اگه دوست دارید میتونید یه نامه تجدید نظر بنویسید و فکس کنید گفتم باشد فقط همین را گفتم همین را توانستم بگویم باید بنشینم این نامه لنتی لعنتی را بنویسم باید فردا اول وقت فکسش کنم جاوازنفا کماندوزی دو ویزا ات اکامپانی دو طول نسه نه ملاقضما ودمم اتقاژات ژون میزنم خوب نیست چی بنویسم به جایش چطور بگویم چطور توضیح بدهم چه بلایی سرم آمده نمیتوانم فکر کنم باید بتوانم این قدم آخر است باید درست برش دارم نمونه نامه ها را از کیفم بیرون میآورم و میچینم جلو. دیشب ده را پرینت گرفتم. نمیدانستم باید چه بنویسم. نپرسیده بودم از شبستری. اسش که پاهایم از راه رفتن بی‌حس شد و حالم سر جا آمد زنگ زدم به میساق. به جهنم که پول تلفنم چقدر می می‌شد در این بیپولی و بدهکاری. به جهنم که آن سر دنیا ساعت چند بود و میساق خواب بود یا بیدار. زنگ زدم. زود برداشت. گفتم سلام میساخ، توی نامه تجدید نظر چه مینویسند؟ ساکت شد. گوش دادم به صدای نفس کشیدنش بعد گفت نگو که ریجکت شدی موهایم را مشت کردم گفتم هیچی نپرس فقط بگو آن تو چه می نویسند نفسش را بیرون داد گفت فرانسه فرق می کند من نمیدانم. بعد گوش داد به من بعد گفت زنگ بزن به سمیرا گفتم نمی توانم به سمیرا بگویم به هیچ کس نمی بگویم گفت بگو گفت حرف بزن گریه کن گریه که عیبی ندارد دیوانه میشوی اینطوری. کاش بود، کاش دستش رو میگذاشت روی شانه هم و می گفت نگران نباش. چیزی نشده که. درستش می کنیم. می گفت حالا مثلا به جایش این کار را بکن یا آن کار را. کاش میشد بنشینیم خانه لیلا و حرف بزنیم. آنقدر حرف بزنیم تا یک راه دیگر پیدا شود برای زندگی من. دیوانه می اینطوری. بعد رفتم کافینت. یکی هنوز در خیابان من بود. نشستم پشت کامپیوتر. نه که ندانم کجا را بگردم نه اما هی صفحه باز کردم و فکر کردم و صفحه باز کردم آخرش نمونه های نامه های تجد نظر را پیدا کردم چند تا را خواندم آن وقت فهمیدم باید چه بنویسم باید یک بار دیگر از اول انگیزه ام را بنویسم باید بنویسم تا به حال چه کار کرده برای رفتن از کجایش بنویسم رجا مامان است در را باز نکرده بیاید تو بس که اخلاقم سگیست امروز. بیا تو مامان در را باز می کند. بیا اینا رو بزار توی چمدونت. یک جعبه کوچک دستش است. میگذارد روی میز؟ درش را که باز می کند بوی آشنایی میپیچد توی اتاق. گذاشتم توی جعبه که نریزه تو چمدون لباساتو کسیف کنه. چرا اینجا انقدر تاریکه؟ جعبه را میگذارد روی میز و پردهی سرم را کنار می زند. نور میریزد توی اتاق؟ حسل یه نور را ندارم برای خودم قایم شده بودم توی تاریکی سرم را میاندازم پایین نباید چشمایم را ببیند ببیند میفهمد چه شده نباید بفهمد نور جبه را روشن کرده شیش شیشه یه کوچک پر از ادویه توی آن است میگوید این قطیا را دیروز خریدم قشنگه قشنگند گیرم دهانم باز نشده که بگویم همین الان بذار توی چمدونت که نمونه؟ بل شو پلیپر اندازه بگیرم اگه خوب بود امروز تمومش کنم با خودت ببری میخواستم بعدم بدم لیلا برات پستش کنه اینطوری بهتر شد. بلند می شوم. تکه های را بتنم می چسباند. دو قدم می عقب و نگاه هم می کند. چشمایش برگ میزند. ب به چقدر بهت میاد؟ پلیور را می گیرد و همینطور که در را پشت سرش میبندد میگوید؟ وقت می کنی بری ماهی بگیری فردا برا رامین درست کنم آره ناهارم حاضره هر وقت خاصی بگو بخوری جبه را بر هزار تا بوی کهنه خوب را با هم می دهد. بوی کابینت بالایی آشپزخانه خانه رشت بوی مغازه آقا جان. بوی دست های بابا بوی لباس هایش. جعبه پرتم هم می کند توی بغل بابا. صدایش را کلوفت کرد. خواند کی میخوره؟ حاکم باشی. مرا نشاند روی پایش. درسته که هم را حاکم باشی بخوره؟ پریدم از بغلش بیرون. پاهایم را چهار بار کوبیدم روی زمین. رامین با من داد زد. نه نه نه نه. مامان کتاب بابا را از زیر چادرش درآورد. اینا رو به بچه ها یاد نده محسن. یه وقت جلوی کسی میگن خطرناکه. چادرش را تا کرد و آرام گفت. خودتم نگو. بذار سایت بالای سرمون بمونه. چمدان را از زیر تخت میکشم بیرون. هدیه لیلاست برای رفتنم. گفتم بزرگ نیست؟ گفت نه. من خودم یک بار چمدان رفتن بستم. میدانم باید چقدر باشد. خیلی چیزها هست که باید با خودت ببری. بعد آه کشید، در چمدان را باز می کنم. ویزایم درست می شود. معلوم است که درست می شود، همه چیز آماده است، کتها، دسمان گردنها، جراب شرواری ها، همه را میزنم کنار، جبه را جا میدهم گوشه چمدان، بویش را لای لباسها قایم می کنم، می کف زمین، چطور به مامان بگویم رد شدم؟ چکار کنم با این دامنها و کلاهها که اینجا به هیچ دردم نمیخورند؟ از جا تکون نمیخوری فهمیدی؟ شانههای لیلا را گرفتم و چشم به دیوار. بند آمد حققش. ملافه را از روی تختشان کشیدم. مچاله کردم و گذاشتم توی کیسه زباله. گوشش ماند میرون. قاب‌کس‌های بالای تخت و لباس‌های توی خانه میساق را که هزار سال بود لیلا از روی تخت بردمیداشت. گذاشتم توی کیسه. محکم لگد زدم بهش. یا بگو رحمان بیاد این آشخاله رو بندازه دور یا همینجا آتیششون میزنن بعد دو هفته دیگه بوی نموده توی این ملافه ی این قدم این عکس‌ها رو نگاه نکن دیوونه میشی سرخورد روی دیوار. نشست روی زمین. بند نمیآمد حق‌حقش. ببین لیلا، میساق از دیروز رفته سر کلاس. تا آخر عمرتم هم که ذل بزنی به اینا و زار بزنی بر نمیگرده. پاشو خودتو جمع کن. باید خودم رو جمع کنم. باید این با سا را بیاانداززم دور باید آتششان بزنم این چمدان زیر تخت دیوانه ام می کند چرا این نامه لعنتی را ننوشتم؟ ساعت که دو شد همین الان ده بود کدام احمقی گفته زمان خطی است دروغ گفته زمان معاده چند مشهودی است اگر نامه ننوشته مانده باشد یا کاری نکرده دو ساعت می شود دو دقیقه دو ثانیه اصلا چشم که به هم بزنی میگذرد اما اگر منتظر باشی مثلا منتظر جواب یک کارمند احمق در سفارت دو ماه به اندازهٔ دویست سال میگذرد هی hey, پیرتر و پیرتر میشوی در آینه روزها جانت را میگیرند و شب نمیشود تیرم شده نیم ساعت دیگر کلاس امیرعلی آن سر تهران شروع میشود لباس میپوشم به آینه نگاه نمیکنم ریخت نحس که دیدن ندارد کیفم را برمیدارم سرم پایین است موقع بیرون رفتن ماما نباید صورتم را ببیند، خداحافظ را داد میزنم، منتظر جواب هم نمیمانم، سری میروم که نگوید نهار خورده یا نخورده یا چرا نمیخوری یا کی میخوری، نباید چیزی بفهمد، هیچ کس نباید چیزی بفهمد، ویزایم میآید حتما زودتر از اینکه بقیه بخواهند دربارش حرف بزنند و مخم را به و هی بگویند چقدر هم زحمت کشیده بود بیچاره میآید؟ سوئیچ را میچرخانم و صدای بلند و مزخرف الویس کاستلو را خفه می کنم. توی این اوزای کسافت هوا چرا اینقدر گرفته است؟ نمیدانم پایش چه دارد غیر از گل و و هوای گرفته که همه خودشان را میکشند برایش. روشن فکراهای قلابی با آن اداهای نفرت انگیز. لیلا هم خودش را میکشد ادای آنها را در بیاورد. سوار ماشین می شدم. سرم چرا گیج می‌رود؟ میزنم پسره را میکشم اگر بخواهد مثل همیشه سر کلاس خنگ بازی در بیاورد. کیوش که ترقی نکرده در این سه روز. پس میزنم میکشمش. کاش کلاس را کنسل کرده بودم. اصلا نمیخواهم امروز این نامی مزخرف را بنویسم. حالا که دو ماه از کلاس ها گذشته یک روز اضافه یا کم چه فرقی میکند؟ گندش بزنند. فکرم هی تاب میخورد. از اینجا تا آنجا. از خانه تا کلاس. از تهران تا تولوز دیشرفها مرا سواری یک تاب بزرگ کردند و هر روز از این سر دنیا حل دهند به آن سر دنیا نه اینجا هستم نه آنجا توی هوا ماندهام توی هوا بوده این دو همان روزی که مدارکم را دادم انگار خودم هم رفتم با آنها از اینجا رفتم و به جایی نرسیدم ماندم توی هوا توی آسمان توی آسمان بودن سخت است نمیفهمند فهمند بیشرف ها. ماشین را خاموش می کنن. اصلا نمیروم کلاس کی گفته باید بروم دو ساعت از نفهمی یک بچه خنگ چاق حرص بخورم وقتی قرار است نروم فرانسه گوره بابای پول با این چند روز کلاس اضافه رفتن مگر چقدر در می آید؟ به شبانه گفتم پیشنهاد ازدواج بهت نداده اگه می ازدواج نزدواج کنین پول لازم داره دیوونه شدی؟ ارسلان هیچوخت همچین چیزی نمیگه نمیخواد حالا حالا نگرانه پولا باشی نگرانم مگر میشود نباشم چهار میلیون تومانش را هنوز ندادم. پایم را از ایران بگذارم بیرون دیگر نمیتوانم پس بدهم همین فردا میروم یوروها را از بانک در می آورم و قرض ارسلان را میدهم بقیهاش را هم میدهم میروم سفر و خرید و خوشگذرانی ویزایم را ندهند بقیه عمرم را مثل همه آدمهای دیگر زندگی میکنم مثل ده سال دیگر خودم وقتی که همه کارهایم را کردم، دیگر هم هیچ وقت آرزوی بزرگ نمیکنم. اینقدر این رت خودم را عذاب دادم که چی بشود آخرش. کمی دیر سر به فهمم هیچ گهی نشده و تا آخرش هم نمیشوم کاش شک می به هم و یادم میرفت همه چیز. اصلا کاش حافظه نداشتم. ماهی میشدم. شدم. همونطور که بابا میخواست، و هر روز ریست میشدم. صبح که بیدار می شدم یادم می رفت دیروز قرار بود بروم فرانسه یا هر گور دیگری یادم می رفت چطور کنکور دادم بعد درس خاندم، بعد پول در آوردم، بعد فو خاندم، بعد پذیرش گرفتم آن وقت مثل ممنتو چیزهایی را که می خواستم می نوشتم روی دیوار می نوشتم هیچی، هر روز فقط همین را می نوشتم, می نوشتم من هیچ وقت نمی خواستم. هیچ چیز بزرگی بشوم. موبایلم را روشن می کنم بعد از 24 و چهار ساعت. ده تا اسمس با هم می آید. نمی باران بلا تکلیف بیزوری می نشیند روی شیشه ماشین. برف پاکون را که می زنم کسافت می شود شیشه. شماره مادر امیرالی را می گیرم. حال است مثل همیشه. پول چهارجلسه جلسه بعدی را دیروز ریختم به حسابت گرفتی؟ بله ممنونم. امیرالی بیچارم کرده است. تمریناشو تازه نوشته ببخشید من امروز نمیتونم بیام ای وای نمیشه که روجا جان امیرالی فردا امتحان داره به جهنم که امتحان دارد گور بابای خودش و امتحان داشتنش به من چه که امتحان دارد؟ ما چطوری امتحان میدادیم بی پدر و بی پول و بی همه چیز؟ صدای فین بلندی در می, می سرما خوردم اگه بیام امیرعلیم مریض میشه بگی تمرینایی که براش نوشتم و حل کنه. اگه اشکالی داشت زنگ بزنه گوشیم روشنه قبل از اینکه حرفی بزند قطع میکنم گوشیم رو خاموش میکنم و راه افتم. باز دو قطره باران آمده گند خورده به این خیابانها چهار راه بسته است گاز میدهم توی فرعی باز خوب است رامین این ماشین لکنته را نفروخت و مجبور نیستم منتظر تاکسی های لجنمال بایستم که گاز میدهند و کسافت خیابان را می پاشند به سر تا پای آدم ها. بعد از دو سال اولین بار است که کلاس امیر را کنسر می کنم. باز هم مادرش گر میزند. زن احمق بزرگترین مشکل زندگیش دوازده یا سیزده گرفتن پسر چاق زشتش هست در امتحان ریاضی میانتر. فکر نمی کند بچهش خیلی که هنر کند ده سال دیگر میرود سر ساختمان های پدرش دیوارهای پرپری میبرد بالا و سر مردم کلاه میگذارد دو نمره بالاتر توی ریاضی به چه دردش می خورد. چقدر خوب است آدم پول لازم نداشته باشد تف بیاندازد توی صورت همه اینها کلاس نرود ظهر جمعه بگیرد خانه بخوابد اصلا نخواهد هیچ جا برود نه کلاس، نه فرانسه، نه تا سر کوچه، نه هیچ جای دیگر. بگیرد ور دل مامانش بنشیند تا پیر شود. نمیدانم این چیزی شدن را چه کسی توی دهان ما انداخت. از کی فکر کردیم باید کسی شویم یا کاری کنیم؟ این همه آدم در دنیا دارن نباتی زندگی میکنند. بیدار میشوند و میخورند و میدوند و میخوابند. همین. مگر به کجای دنیا برخورده بابا گفت جوری زندگی کن که بعد از تو آدمها تو رو یادشان بیاید. نونه نونهالان گیلان اول شده بودم. بابا ماشین آقا جان را گرفته بود و مرا آورده بود خانه. لباس شیطان را از تنم در نیاورده بودم هنوز. شنل و شاخ دومی که مامان درست کرده بود نمیگذاشت درست راه بروم. بابا برایم یک عروسک جایزه خریده بود. کله عروسک را کنده بودم. داشتم چشمش را از گردنش میآوردم بیرون. میخواستم بفهمم چرا وقتی میخوابانمش چشمهایش بسته میشود. بابا عروسک را گرفت و گذاشت کنار. مرا نشاند روبروی خودش. گفت من کسی نشدم اما تو رامین باید بشوید. یادت میماند؟ گفتم آره بابا. یادم میماند. فردایش رفت و دیگر نیامد. چی از بابا به من رسید غیر از این حرف و چشمهای سبزش؟ نیامد که ببیند حرفش زندگی مرا خراب کرده. خودش کسی نشد. من چرا باید می شدم؟ دستم را می گذارم روی بغ. چرا این چراغ سبز نمی شود؟ چه ترافیک بیخودی است ظهر جمعه؟ روز تعطیل هم نمی توانند بنشینند در خانه مردو. مردم؟ ماشین جلویی برای جلوییش بغ می جلویی هم برای جلوی. مگر مجبورند بنشینند پشت ماشین وقتی اخلاقشان است؟ دو بچه معلوم نیست از کجا ظاهر میشوند و می توانند لایه ماشینا از قوطی اسفند دستشان دود بلند می شود مرد کورد ساعت فروشی کنار چهار راه ایستاده دستش از مچ تا بازو پر از ساعتهای های طلایی و نقره ای است جور ترسناکی همه چیزش غریب است کلاغش شلوارش شالی که به کمرش بسته و چشمهایش چشمایش از همه غریب تر است اگر حرف بزند لابد لهجهش هم غریب است ریزایم را که بگیرم همین قدر میشوم می شوم در فرانسه هرچقدر هم که لباسهای شیک بپوشم و موهایم را مدل مودل آدریتوتو کوتاه کنم و بی حرف بزنم باز هم غریبم. مرد گوشه چهار ایستاده و جلو نمیآید. از جلو رد می شوم نمی آید به این خیابان ها مثل یک دکمه بنفش وسط یک پالتو قهوهای بی ربط است به همه چیز بی ربط می شوم در خیابان های تولوس جایی را در آنها پیدا نمی کنم که با دیدنش یاد چیزی بیفتم و گوشه لبهایم برود بالا. باید همه چیز را از اول بسازم. از روز تولد زندگیم آنجا از سفر کنتر می اندازد. بی هیچ خاطر جلوی خانه لیلا پارک می کنم کجا میتوانم بروم غیر از اینجا؟ فرانسه لعنتی مگر دوست دیگری برایم باقی گذاشته؟ هزار تا دوست داشتم قبلا. دوستهای کارتینگ، کانون فیلم، گروه ایرانگردی اما حالا انگار سر پیری دهتا بچه گذاشته باشند و رفته باشند و فقط خودم مانده باشم و زنم فقط لیلا برایم مانده و شبانه درست مثل وقتی که تازه از رشت آمده بودم و غیر از این دوتا هنوز به کسی بند نشده بودم در این شهر قناس خاکستری چند بار پشت سر هم زنگ میزنم باید شبانه آمده باشد قرار بود زود بیاید. خوش به حالشان. خوش بهحال همهشان که فکر لعنتی رفتن در سرشان نیست شبانه که حرف بزند هر مزخرفی که بگوید کمک می کند این روز سخت زودتر بگذرد ماهان پشت آیفون میگوید؟ گوید؟ روجا ببین لباسمو. و؟ میروم بالا کاش شلوغ نشود امشب کاش می کنترل آدمها را بگیرم دستم و نگذارم چیزی بپرسند اصلا هر وقت رسیدن به پرسیدن خاموششان کنم. یا بزنمشان جلو یا بزنم خوردشان کنم آماده هم کله اولین نفری رو که درباره ویزای من سوال کند یا نظر بدهد یا دلداری بدهد یا هر کوفته دیگری مثل فیلم یازده و چارده با یک سنگ 20 کلوی لح کنم ماهان در را باز کرده و با لبخندی پهن در چار ایستاده با دقت به صورتم نگاه می کند لبخندش شل می شود یک قدم عقب می رود بازوهایش را می, گیرم و تکانش می دهم. وای چه شیک شدی پسر؟ بلوز چارخانه آبی پوشیده با شلوار پارچه ای آرام میگوید ارسلان خریده شبانه از آشپزخانه میآید بیرون دستهایش خیس است صبح اومد دنبالمون رفتیم خرید و ناهار بعدم رسوندمون اینجا گفت تا دو سه ساعت دیگه میاد در راه میبندم شبان انگار از چیزی خجالت می کشد. اینا را برای ماهان خرید اینم برای من. دست خیسش را جلون باز می کند. یک گردنبند سفید ریز کف دستش برق میزند. باز چه گندی زده. نمیدانم چطور به شبانه نگاه می کنم که اینقدر سریع را لای انگشتهایش قایم می کند و برمیگردد یک کیسه ژامبون گذاشته روی پیشخان. یک مشت خلال دندان و زیتون و گوجه هم گذاشته کنارش. میگوید دیشب به مامان گفتم زنگ بزنه و قرار نامزدی رو بذاره راستش خسته شدم از بلا لیلا میگه خیلی از چیزا تو نامزدی معلوم میشه بعد اگه نخواستی قبول نکن یک ساله میخوای اگه نخواستی قبول نکنی تونستی؟ ماهان براغ میشود با قد بلندش دیوار درست میکند بین من و شبانه شبا گفت نمیخوام به زور خرید چیزی نگفتم به خواهرت که چرا شاکی میشی آقا پسر؟ شبانه هی جانبون لوله میکند آتواشقال میچسباند بهش و میچیند توی دیست چی کار میکنی دیوونه مگه بیکاری؟ همه رو بچین کنار هم همین جوری میخوریم دیگه کار بدی کردم قبول کردم گردم بم بخره رو جا نمیدونستم بعد چی کار کنم قبول نمیکردم ناراحت میشد ترستم مامانم دعوام کنه چند بار زهنی زدم به تو بگم چرا گوشت خاموش بود؟ مانتوم را در میآورم و آویزان می کنم همینطوری تو چرا هنوز اینقدر به امریختهی؟ لباسات کو؟ نگاه می کنم به لباسایم یادم رفته بلوز خانم را عوض کنم یه چیزی از لیلا می گیرم می پوشم ماهان می پرسد مریضی؟ از وقتی آمده هم همین جور مات دارد به صورتم نگاه می کند دستم رو فرو میکنم لایه موهای لختش. نه خیر آقا پسر. آرایش نکردم. خوب حواست به همه چیز آدمه آ. شبانه میگوید. حواست میخواد. بیچاره هیچ وقت دور این شکلی ندیده. عادت نداره. عادت میکنه. بلند میشه و مشت میزنم به شکم ماهان. پاشو بریم مواتو فشن کنیم آقا پسر. برم شبا. موهای خوهرت هم باید بعد از فشن کردن کالباسا درست کنیم. بلند شو. می میرویم به اتاق لیلا. حالم از نگاه مهربان و نگران و همدرد شوانه به هم می‌خورد. نمی‌خواهم اینجوری نگاهم کند. نباید دلش برای من بسوزد. هیچکس حق ندارد دلش برای من بسوزد. خودم می‌توانم زندگیم را درست کنم، مگر تا حالا نتوانستم. مگر برای گرفتن پذیرش هر کاری را که همه می‌گفتند نمی‌توانم انجام ندادم مگر من نبودم که برای آن امتحان زبان لعنتی که همه میگفتن قبول نمیشوی، دو ماه فقط شبی چهار ساعت خوابیدم. هر روز هفته صبح میرفتم شرکت پنجه هست می میرفتم درس میدادم و نه شب می آمدم خانه زبان میخواندم تا سه صبح. لیلا گفت: پیر شدی روانی. ندیدی زیر چشات چروک افتاده؟ لااقل دو ماه از شرکت مرخصی میگرفتی. پولشو لازم دارم. خب بعضی از کلاساتو کنسل کن. مامان چای آورد. فکر میکرد من نفهمیدم، زنگ زده به لیلا و میساق بیایند به داد من برسند. میساق آه کشید. کاش لیلا کمی از انگیزه ی تو رو داشت. هنوز امتحانم را نداده بودم که میساق بدون لیلا رفت. ماهان را می نشانم پشت میز توالت. می تکان نخورد. آرام میپرسم. به نظر تو آخرش من میرم. کجا؟ فرانسه دیگه پیش میساق، نه دیوونه، میساق نه دیوونه میساق کاناداس نرا روجا دوره گم میشی دیدی میساق گم شد چیز سردی در تنم میپیچد بلند میشوم سیاهی چشمهای ماهان با من در اتاق میچرخند تمامی کشوها را میگردم یک تافت پیدا میشود در این خانه گندش بزنند انگار نه انگار یک زن اینجا زندگی می کند یک جلموی کهنه در آخری آخریست تهش کمی مانده می کوبم کف دستم ماهان می ترسد و چشمهایش را می بندد حالا چشماتو باز کن لیلا دستش را از روی چشمهایم برداشت چراخها روشن شد میساق پرید جلو شوبد باز بود انگار دستهایش را که باز کرد کاغذ رنگی آسمان خانه را پر کرد لیلا نشست پشت پیانو رامین از اتاق بیرون آمد ایستاد در چارچوب در میساق بلند بلند میخندید شاپو بلند لبدار سرش بود شعبد باز بود آن شب بالای سر لیلا ایستاد و با آهنگ تولد از مبارک روی پیانو ضرب گرفت شبانه از آشپسخانه آمد بیرون یک کیک پر از شهمهای روشن دستش گرفته بود میساق پشت سر شبانه بود دورش میچرخید به جای من شهمها را فوت میکرد شبانه خندید گفت نکن دیگر میساق گوش نداد هنوز کنار در ایستاده بودم. میساق کلاه بوغی را گذاشت سرم. لیلا چرا نمیرقصی زد؟ میساق گفت کاشین شبا نگذرند. دستم را فرو می کنم لای موهای نرم و سیاه ماهان و همه را از پیشانیش کنار میزنم. آخرین قطره ژل را می مالم به انگشت هایم. موهای سیخ سیخ شده بالای سرش را باز هم مرتب می کنم. سرم را عقب می گیرم و از دور نگاهش ماه شدی پسر. بود دوباره به شبانه نشون بده. خودش را در آینه نگاه می کند. صورتش باز می شود. آره ماه شدم. بلند می شود. شبانه را صدا می زند و به طرف در میدود نگاه می کنم به کتابخانه لیلا و جای خالی فیلم های حالا دیگر فقط همین یک تکه جای خالی را دارد در این خانه. فقط همان فیلم ها را با خودش برد. اما وقتی بود اتاق لیلا نور هم داشت انگار. میساق مینشست اینجا، روی همین تخت. اینک گرد دورفل را که یک روز اصر با لیلا از دست فروشی در جمعه بازار برایش خریده بودیم به چشم میزد و داستان میخاند. آن شب من بودم، قاسم بود، پسر زیور فروش بود، احمد حسین بود و دوتای دیگر هم بودند که یک ساعت پیش روی سکوی بانک با ما دوست شده بودند. لیلا گفت میآید بهش، دستفروش داشت عینک و ساعت و قط نما و خزر دیگرش را جمع می کرد. لیلا گفت: آقا می شود این عینک را شیش انداخت؟ گفتم تو عینکی نیستی نمیفهمی این عینک راحت نیست گوش و دماغ را اذیت می کند دست فروش گفت می شود لیلا عینک را خرید و برایش شیش انداخت. میثاق را به چشم میزد و گوگل میخواند و با صدای بلند می خندید تکه هایش را برای ما هم میخواند خندمون که نمیگرفت، هرس میخورد خورد. مسخرهمان می کرد. شماها برید به ساعت خوش بخندید. سوپرایز، سوپرایز و با دست ادای ملاقه در می آورد. بعد میرفتیم در تراس کوچک اتاق لیلا سیگار میکشیدیم و میساق همانطور که دستش دور شانه لیلا حلقه بود، برایم از چاپلین حرف میزد زد. خانه لیلا روشنتر بود انگار وقتی میساق حرف میزد زد. تو اینجا نشستی؟ شبان کنارم روی تخت می نشیند. دارم فکر می کنم چی بپوشم. قرار ندارد سر جایش. سرش رو انداخته پایین و هی با انگشت بازی می کند. آخرش میگوید: میدونی روجا تو همیشه بهم کمک کردی اما حالا که تو بده ما حتا نمیدونم چه شده بعد چی کار کنم تو چه میشه از من کمک نمیخوای. میدونم خیلی بی اما شاید بتونم برات کاری کنم. بدون ایه نگاهش کنم از جایم بلند میشوم. بلند شو، لوسم نشو. کارای شام تموم شده؟ از من ناراحتی؟ به خاطر ارسلان؟ آخرتو تو که هیچ وقت نگفتی با اون چیکار کنم. خول شدی؟ چرا باید از تو ناراحت باشم؟ بلند شو، الان مهمونا میان. یه خوردم ریمیل بزن چه از این حالت در بیاد. بلند میشود. کلافه است. منتظر نگاهش میکنم. چشمایش را میاندازد پایین آرامتر از قبل میگوید یه چیزی فقط میخوام به ارسلان بگم ماهانو پیش خودمون نگه داریم هرچقدر فکر میکنم میبینم نمیتونم بذارم پیش مامان بمونه می نشینم روی تخت چطور کسی میتواند اینقدر احمق باشد میدونی روجا ارسلان ماهانو دوست داره یعنی اون روزی که رفتین فرهزاد دوستش داشت یادته امروز هم براش لباس خرید موان بگه چی کار داره به ما زندگی خودشو میکنه به نظر بگم به هر زلان. نه شبانه نگو توقع خیلی زیادیه منطقی هم نیست برای زندگی هم خوب نیست اصلا هیچ چیز این تصمیم احمقانه خوب نیست من نمیفهمم چطور این چیزا به ذهنت میرسه چرا صدایم اینقدر رفته بالا موهایم رو مشت میکنم در دستایم خودم خوب نیستم آن وقت شبانه هی مزخرف می گوید و میرود روی مغز من. صدای کلید میآید. بعد صدای زیر لیلا که ماهان را میبوسد و قربان صدقه موهاب و لباسهایش می رود. شبانه نگاه میکند. می کند. چشمایش برق میزنند از عشق. میگوید؟ راست میگه. مغز من هیچ وقت درست کار نمیکنه. دیوون ای دیگه هزیون میگی. فردا خودت به حرف خودت می خندی. لیلا اومد بریم؟ با چشم پر از عشق سخف را نگاه می کند. چند بار محکم پلک می زند. عمیق نفس می کشد. فقط شبانه بر دست عشقهایش را به چشم برگرداند. لیلا دارد یقه ماهان را درست می کند. ماهان صاف و مغرور جلوش ایستاده و تکان نمی خورد. چه کردی با این بچه روجا چقدر خوشتیب شده؟ شالش را میاندازد روی مبل. لاک قرمز خوشرنگی زده. اولین باری است روی ناخونهایش لاک می بینم. چقدر میآید به دست های کمرنگش میگوید دیدید داره چه بارون قشنگی میاد اصلا دلم نمیخواست برسم خونه این پنجره رو باز کن شبانه منتظر شبانه نمی ماند. خودش پنجره را باز می کند هوای گند و گرفته پاییز را بو میکشد کیف می اهوازی باران ندیده. تو چرا گوشیت خاموش بود؟ فکرم شاید بخوای ماشین و بذاری برای رامین گفتم خودم بیام دنبالت خونم زنگ زدم مامانت گفت رفتی کلاس نرفتی؟ نه کنسل شد شبانه شال لیلا را تا می کند. بعد می نشیند کنار ماهان و دکمه بالای بلوزش را می بندد. به لیلا می گوید رجا لباس نایه چرا؟ اصلا بهتر تیپ به بچرم به هم نریز شبانه به یقش چی کار داری؟ چی ریختی تو این غذاها اینقدر بوی خوب میاد. چیزی خوردی روجا؟ یادم میاد ناهار نخوردم. نمیخورم. امروز غذا حالم را به هم میزند. میگویم <تصفيق> کار خوب بود. خیلی. امیر و بچهای روزنامه خیلی خوبن. امروز مجبور شدم دو تا گزارش بنویسم. حسابی خسته. خودش را پرت میکند روی مبل. کیف میکند با خستگیش. ماهان میگوید شبا نقاشیامو بده. شبانه می میرود توی اتاق و با یک کلاسور بزرگ برمیگردد. ماهان کنار لیلا مینشیند و نقاشی هایش را پخش میکند روی پای لیلا. مینشینم کنارشان. چه قشن کشیدی پسر. لیلا انگار که نقاشی های پسرش است با عشق نگاه می‌کند. ماهان همش لیلا را کشیده. لیلا با موهای طلایی، لیلا در کوه، لیلا زیر آسمان. لیلا لای درختها لیلا کنار خانه لیلا میبیند و ذق میکند ذوقش حالم را به هم میزند بس که قمانگیز است مثل این آهنگهای شاد است که اگر به شعرشان گوش کنی میبینی روانیها دارند از دلتنگی و فراغ و بدبختی میگویند و وسط رقص اشكت را میآورند ذوقش باید برای بچه خودش میبود کنار میساق نه برای ماهان همین اشک آدم را در میآورد میخواستم ببرمش با خودم میساق تازه رفته بود من و شبانه مانده بودیم خانه لیلا لیلاتا نمیرد از قصه نمیدانم چند روز شد اما همه شبانه میزد به لیلا و جای خالی فیلمهای میساق و چیزی نمیگفت من اولش هی حرف میزدم برای لیلا نقشه میکشیدم نمیگفتم برمیگردد بر, می بر نمیگشت میساق میگفتم ما هم میرویم اصلا با هم میرویم گفتم تو امتحان زبانت را بده پذیرش و ویزایت با من گفتم میمانی اینجا چه کار کنی. حرف نمیزد مات نگاهم میکرد بعد دیدم ماجرا اصلا اینها نیست لیلا الان اصلا خودش رو هم نمیشناسد چه برسد به آینده و برنامه ریزی برایش و این حرفا نشستم گفتم خب میرفتی حالا پاشو برو گفت تو نمیفهمی میساق نخواست من برم بمانم مثل لیلا میشوم خیلی که خوب بشود و بتوانم برای خودم خانه بگیرم و پول داشته باشم و کارم رو دوست داشته باشم و همه اینها آخرش مثل لیلا میشوم شبانه با یک قاشق از آشپزخانه میآید بیرون دستش را زیر قاشق گرفته بخور ببین خوب شده من رژیم گرفتم برای نامزدی نمیخوام زیاد بخورم چرا مزه را نمیفهمم خوب شده من برم لباس بپوشم لیلا نقاشی ها را زمین میگذارد و دنبالم میآید صبر کن بیام بگم چی بپوشی شبانه بلند می شود و نقاشی ها را جمع می میکند نمیخوام لیلا بیاید حالا می خواهد هی با تعجب در صورتم دنبال چیزی بگردد بعد میخواهد صد بار بپرسد چت شده دست هم بر ندارد بعد هم بگوید خوب باش خوب باشم؟ چطور خوب باشم؟ اصلا مگر خودش چند روز در هفته خوب است که توقع دارد من همیشه خوب باشم دو روز از رفته سر کار حواسش پرت شده فردا باز یاد میساق میافتد و اینکه نرفته و چرا نرفته و چرا میساق نمانده و باز بد میشود. لیلا بلوز بنفشی از دراور بیرون میآورد اینو از هفته تیر خریدم قبل کار رد می شدم از اونجا تا دیدمش یاد رنگ موات افتادم میخواستم قبل از رفتن بدم بهت فرانسه بپوشیم اما حالا وقت بهتریه خودم طنت می بینمش همان چیز سرد باز در تنم میچرخد خیلی قشنگه. مامانم امروز پلیور بره به نفشم و تموم کرد از ویزات خبری نشد نمیخوای بری بپرسی؟ نه دلم را میزنم به دریا. یه وقتایی اصلا پشیمون میشم از رفتن. سختتر از چیزیه که فکر می‌کردم. تو که تو زندگی دنبال کارای آسون بودی، تو زندگی پدرتو در نیاره بهت خوش نمیذره. اتیکت لباس را با دندان جدا میکند. همانطور که پشتش به من است میگوید: میدونی روجاب، حالا که همه کارات انجام شد و دیر شده برای این حرفا. ویزات هم امروز فردا میاد و میری و پاد که اونجا برسه دیگه فقط خوشیای زندگی جدید برات میمونه. اما فکر میکنم تو هم مثل میساخ. نمیدونی برای چی میخوای بری؟ یعنی مثلا مثل کنکور دادنمون همه کنکور دادن ما هم مثل همه قطاری بود که داشت میرفت همه هو شدیم و سوارش شدیم من حتی یه بارم فکر نکرده بودم چرا باید برم دانشگاه؟ حالا مگه بشینی درست با خودت کنی اگه کاری داشته باشی اینجا یا یه چیزی داشته باشی که بکارده توی خاک نمیری. مینشت روی تخت بلود را کنارش آرام میگوید؟ شاید اشتباه میکنم. اما الان چند روز فکر میکنم خوشحالم از اینکه نرفتم با میساق رنگش پریده انگار ترسیده از شنیدن صدای خودش. میگویم نگفته بودم چند وقت که بگذره همینو میگی؟ نمیدونم شاید اگه تو هم بمونی بدها خوشحال تر باشی. من تا نرم آروم نمیشم لیلا. فکرش مثل موریانه داره مغزمو میخوره نمیدونم اونجا چی میشه؟ اگه میدونستم میتونستم راحت سرمو بندازم پایین و بکنم. شاید اشتباه میکنم. شاید بعدها پشیمون بشم اصلا از کجا معلوم شاید برم بعد یه روز بیداشم ببینم همه چیز گل و بله برم فرودگاه بیلیت بگیرم برگردم بری دیگه بر نمی‌گردی بلند میشود. کاش به لیلا بگویم چه شده باید به یکی بگویم. به کسی بجز میساخ. کسی که نزدیکم باشد بتوانم توی چشمایش نگاه کنم و حرف بزنم یک لحظه است فقط باید بگویم. میثاق گفت بگو گفت با یکی حرف بزن دهانم رو باز میکنم نفسم گیر میکند در گلو نمیتوانم نمیتوانم بگویم نمیخواهم بیاید بغلم کند بگوید آخی تفلکی از همونهایی که هر روز به شبانه میگوید لیلا از کنار در بر میگردد من میرم میوه ها رو بچینم. مامانت نگرانت بود گفت نوهارم نخوردی حال داشتی بهش زنگ بزن شلوارو کمربندم توی کشوی آخر هست بردا حرفم در گلویم میماند. درامی بندد میگویند از آدمی زاد هر چیزی برمیآید میتواند دریا را خوش کند کوه را بردارد یا چه می دانم درخت های جنگل را گره بزند به هم دروغ میگویند بر نمیآید. آخرش یک مشت بیشرف شرف میآیند گند میزنند به دریاهایی که خوش کرده آن وقت باید دور بزند برود جنگل کوه چه میدونن برود هر جا که میتواند گم شود برود جایی که یادش برود دریایی بوده و او میخواست خوشگش کند باید بگردم چیزی پیدا کنم یک دل خوشی. اگر فقط یک دلخوشی پیدا کنم با خیال راحت نمی رویم. بلوز را می پوشم و با همین بلوز بنفش راه می در در خیابانهای فرانسه همانهایی که خانم را وصل می به دانشگاه راه می روم و دلم تنگ می شود آنجا قریبم مثل مرد کرد ساعت فروش نه به هم خوش نگذرد نه اما دلم تنگ می شود سنگ کلیستم. زندگی آنجا سخت است حسرت همه چیز اینجا را می خورم. حسرت خیابان ها و ترافیک و جند و کسافت را حتی. حسرت روزهایی که از دست شبانه هرس خوردم. حسرت کلاس با شاگردای خنگم را. معلم که نمیتوانم بشوم آنجا. فوقش گارسون می یا ظرفشور خسته می شدم. تحقیر می شدم. عصرها بی پول و تنها در اتاقم گریه می کنم. هیچ کس صدایم را نمی‌شنود. از یاد همه می روم. شاگردهایم، هایم، بچه های شرکت، رامین، لیلا و شبانه، مگر چقدر بعد از رفتن یادشان میمانم؟ یک هفته، یک ماه، شش ماه، آخرش تنها میمانم. هر شب در سرمایه زمستانهای های دلگیر برای لیلا و شبانه ایمیل میفرستم. نمیگویم زندگی چقدر به هم سخت میگذرد، نمیگویم دلم چقدر تنگ شده، اگر بگویم هم باور نمی‌کنند. به جایش چیزی می‌گویم که بخندند. می‌گویم من اینجا خوبم. همه چیز عالی است. از دانشگاه هم تعریف می‌کنم و کلاس های رنگ و وارنگش. از کار جدیدم که مثلا در یک اتاق شیک در دانشگاه است. از همکلاسی‌های سیاه و عرب و فیلیپینی هم می‌گویم. دروغ می‌گویم. ته همه, می همه جمله‌هام علامت خنده میگذارم دو نقطه دی دو نقطه دی آخرش می بنویسم هوای مامان و هوای همدیگر را داشته باشند میگویم این چندین هزار کیلومتر فاصله عمرن بتواند تواند بین من و آنها جدایی به اندازد دروغ میگویم مگر می شود جدایی ناندازد صدای زنگ می آید. شبانه در اتاق را باز می کند فقط دهانش نیست که می خندد همه صورتش است با زغ می گوید حاضر نشدی روجا ارسلان اومده اومده که اومده چرا خلبازی در میاری؟ مگه از سفر قنده ها اومده؟ تو که صبح دیدیش؟ اون وقت میگه نمیدونم دوستش دارم یا نه؟ میخندد و بیرون میرود. دستم را لایه موهایم فرو میکنم و همه را میریزم روی پیشانی. بلند شده دیگر. از توی کشو لیلا یک رژ صورتی پررنگ پیدا میکنم. میمالم به لبها. بوی گند ماندگی میدهد. کشوهش، شواش، میزش، اتاقش، اصلا همه زندگی لیلا پر از چیزهای گنده کنه است. رژ می اندازم در سطل آشغال و بیرون میروم. ارسلان روی همان کاناپ قرمزی نشسته که همیشه میساق مینشست می نشست. این همه مبل توی این خانه است. نمیشد یک جای دیگر بنشیند. همینطور که یک دستش روی پای ماهان است چیزی به لیلا میگوید که نمیشنوم. میخندند: شبانه جلواش چای میگذارد و شام را که دور خانه چیده یکی یکی روشن می کند. گردنبند ریزش در گردنش برق میزند. سلام میکنم. ارسلان بلند میشود. خوبی روجا تو که هنوز اینجایی پس کی این ویزا؟ مگه جای تو رو تنگ کردم؟ میخوام برنامه شمال بذارم آخر هفته. پس هستی دیگه؟ آره. نمیروم جلو. پشت پیشخان میستم و نگاه میکنم به مبل قرمز که قد و قباری ارسلان اصلا بهش نمیآید میساق روی همین مبلش نشسته بود. برایش آب آوردم. چرشمایش سرخ و ریز شده بود. بهمنش را عمیق پک زد. خیلی وقت بود که به جای کنت مشکی بهمن آبی میکشید. گفت میدونی چرا عاشق لیلا شدم؟ تو آدم زندگی نبودی. وحشی بودی. بند نمی شدی یه جا. از پست بر نمی اومدم. لیلا الاه بود. خلاهی سنگی، زیباب و آرام و بابقار. اما حال دیگه از پس اونم بر نمیام. در فریزر را به هوای باکس سیگارهای میساق باز میکنم. لیلا جایشان کره گذاشته. سرم را برمیگردانم رو به حال. شبانه مثل زنهایی که هزار سال از کارشان شوهرداریست مثل پروانه دور خانه و دور ارسلان میچرخد و چای و شیرینی و بشقاب می آورد. پنهانی نگاه میکند به ارسلان. هر دو لبخند زشتی میزنند که حالم را به هم میزنند. ماهان نگاه میکند. خوشش نیامده. معلوم است. میگویم بلند شو بریم ببینیم خوهره چی پخت پسر. لیلا بلند میشود. منم برم حاضرشم. الان سمیره میرسه. چشمکی به من میزند. ماهان دنبالم میآید میگویم به نشینت پشت میزه آشپسخانه. گروست شده. در یخچال را باز میکنم. تا خرخره است مثل وقتی میساق بود چقدر معلوم است که نیست حالا که خانه شلوغ است وقتی بعد از مهمانی ها شب خانه لیلا میماندم تا صبح صد بار با هم در یخچال را باز میکردیم تا صد بار صدای لیلا در بیاید بذارید برای فردا می چیزی بمونه نمیتونم نوار درست کنم از اینا میخوام چشم کشداری میگویم ظرف سالات پاستا را میآورم بیرون یک پشرواب با دو قاشق برمیدارم و برای خودم و ماهان سالاد میکشم. از روی پیشخوان نگاه میکنم به شبانه که کنار ارسلان نشسته. یعنی میآیند به هم؟ لیلا داشت جلوی ساختمان کمیته انزباتی دانشگاه قدم میزد. منتظر میثاق بودیم که رفته بود اتاق ریاست نگزارد بچههای تظاهرات تعلیق شوند. لیلا گفت: همیشه فکر میکنم وقتی میثاق به دنیا اومده حتما داشته میخندیده یا داشته بین شمشادا بازی میکرده. نمیتونم تصور کنم که مثل بقیه ای آدم و لخت و خونی بوده و گریه کرده و ششیده. فکر کردم کاش من هم با آنها رفته بودم تو. رئیس حراست با من خوب بود. دوبار که میخندیدیم توی رویش حل میشد همه چیز. میساق گفته بود لازم نیست. تورا نمیبریم. بد حرف میزنی کارها رو خرابتر میکنی. بود. لیلا گفت. میصغ شب هیچ کس نیست. به هزار تو میایین به هم. کاش هیچ وقت نگفته بودم آره، میایید. لیلا می توانست یک شوهر آرام داشته باشد. آرام و سنگی مثل خودش. آنقدر سنگین که به زور بتواند راه برود، چه برسد به اینکه بپرد. دور دهان ماهان سفید شده حس. با دستمال پاکش می‌کنم. دوست داری؟ صدای زنگ می آید. لیلا با دامن سرمه چیندار بلند و بلوز زرد از اتاق می آید بیرون. موهای لخت و بورش را بالا جمع کرده. خوشگل است. چقدر بزرگتر شده در این دهما. همانطور که می میخواست. می خواست. بزرگ و خوشگل و غمگین. ماهان بلند می شود و دنبال لیلا می رود. لیلا در را باز می کند. کسر سمیرا مثل پرندی که آزادش کرده باشند می پرد توی خانه. سمیرا می آید تو. نگاهش چند بار از شبانه به ارسلان می رود و برمیگردد. می گردد. امسال بیشتر از همیشه شبیه لیلاست. یا لیلا شبیهش شده نمیدانم. مرا که می میگوید می گوید رامین داش پارک می کرد. الان با بهرنگ میان بالا. اسم رامین را که میآورد آورد معجزه می شود انگار. حس میکنم تکه های تنم از این ورا آنور جمع میشوند و میآیند میچسبند هم تازه میفهمم چقدر رامین را میخواستم در این دو روز تکه می میدهم به دیوار کنار در و منتظرش میایستم شبانه نگاهش به ارسلان است و روی میز خوراکی میچیند جوری نگاهش میکند انگار از ازل عاشقش بوده ماهان دست لیلا را گرفته جدا نمیشود از او ارسلان میخواهد بنشاندش کنار خودش ماهان دست ارسلان را پس میزند و بیشتر میچسبد به لیلا سامیرا از خوبی هوای امروز میگوید و از بچه دوستش که توی پارک اصلاً نمی ساخت باریان بهرنگ میآید تو. با لحجه عجیبی سلام می کند. مدام خم می شود. بلند می خندد. مثل یک اروپایی اصیل است معلوم هستی که دوبار بیشتر ایران را ندیده. در را نگه میدارد رامین میآید تو. چشمایش خسته است و موهای فرفریش حلقه حلقه روی پیشانیش ریخته. بغلم که میکنند انگار آب یخ میریزند روی قلبم انگار قلبم سنگ قبر باباست و مامان پارچه آب و گلاب را خالی کرده رویش خونک میشد لا مثل آن وقت که می آمد خانه و مامان لیوان استیل عرخ کرده ی آب و یخ را دستم میداد دستم از سردی لیوان میسوخت تا برسم به بابا لیوان را بدهم دستشو خودم را بندازم توی بغلش بغل رامین بغل باباست انگار دلم نمیخواهد از آن بیرون بیایم میگوید باز داری کدوم خرابکاری تو قایم میکنی که گوشیتو خاموش کردی از دیروز ماما گفت خیلی داغونی چی شده گلویم درد میگیرد از نگفتن از حتم دارد گلویم را پاره میکند بیشرف دیگر نمیتوانم یعنی تنهایی نمیتوانم تحملم دارد تمام میشود اینجا فقط تا اینجا میتوانستم دارد سخت میگذرد خیلی سخت این شناگرها نفس میگیرم. کنار گوش رامین آرام می گویم به هیچکس کس نگو رامین حتی به مامان دستش را میکشد روی کمرم آب یخ از کمرم راه میگیرد و چکه می کند در پاها آرامتر می گویم بیزام رد شده از بغلش میایم بیرون نگاهش نمیکنم. من که گریه نمی کنم. آن هم به خاطر چیزهای بیخودی. اصلا هنوز که چیزی نشده مینه شینا فکر می کنم اگر دلم خواست نامه تجری نظر رو می‌نویسم و ویزایم را می گیرم. مگر زندگی من دستان بی‌شرفاست خودم برایش تصمیم می گیرم. خودم تنهایی مثل همیشه چشمای رامین بلا تکلیف است میخواهد چیزی بگوید نمیخواهم بگوید تون تون گویم. ولش کن رامین درباره حرف نزنیم کت تو بده به من چای میخوری؟ کت رامین را آویزان میکنم کیفم را برمیدارم و موبایلم را رو روشن می‌کنم باید زنگ بزنم به مامان نگران میشود سمیرو دارد بارانیاش را آویزان میکند میگوید از سفارت چه خبر لعنتی لعنتی چرا باید عالم و آدم بدانند قرار بوده من چه گوهی در زندگیم بخورم هنوز چی راستش دارم کم کم پشیمون میشم شاید اصلا بمونم نگاه میاندازم به رامین حرصم در میآید دوست ندارم بداند دارم دروغ میگویم. کاش چیزی نگفته بودم بهش سمیرا میخندد همه قبل از رفتن پشیمون میشن لیلا رفتن منو خوب یادشه آرزو میکردم ویزام نیاد و بمونم همینجا ویزات که بیاد اینقدر درگیر جمع جور کردن و رفتن میشه که وقت نمیکنی به این چیزا فکر کنی آخه خیلی دیر شده تا وقتی خبر ندادن نگران نباش ویزا رو بالاخره یکی دو هفته این ور جواب میدن سر تجدید نظر فقط عذیت میکنن میکنند. آره، نامردا جواب نامایی تجه نظر رو هیچ وقت نمیدن. یعنی من تا حالا نمیدم به کسی جواب داده باشن. دروغ میگویی سمیرا دروغ میگویی خودشان گفتن نامه را بنویس و زود فکس کن. مریض که نیستند. حتما میخواهند جواب بدهند دیگر. تو نمی دانی. اصلا تو از کجا می دانی؟ تو که پنج سال پیش رفته ای حتما اوضاع عوض شده حتما جواب میدهند مگر میشود ندهند؟ ارسلان دستش را میگذارد روی شانه رامین میگوید؟ اصلا همه با هم بریم شمال. آخر همین هفته خوبه؟ شما هستی آقای دکتر؟ را میگوید من و رجا که آخر هفته مسافریم. رجا بیاد منم دیگه تنها نیستم. شما که برین شمال دلم نمیسوزه. کاش به قسمت اعتقاد داشتم. آن وقت دیگر زندگیم دست خودم نبود. قصه نمیخوردم برایش. میگفتم چون مامان راضی نبوده نرفتم. چون ترسیدم. اصلا میگفتم گوره بابایش قسمت نبوده لابد بهتر بوده برایم که کارم درست نشده رامین بازویم را میگیرد و نفسش به صورتم میخورد میگوید تو میتونی یه راه بهتر پیدا کنی روجا همیشه میتونستی بهترین راه را پیدا کنی نگران نباش بغلش کردم گفتم نگران نباش درستش می کنیم گریه می کرد تب داشت مامان فهمیده بود کار میکند زده بود توی گوشش گریه کرده بود بعد رفته بود از خانه من میدانستم. یک ماه بود زنگ های آخر مدرسه نمی رفت میرفت دور میزد در رشت با چرخ دوستش اسکم و میفروخت. خودش به من گفته بود گفته بود به کسی نگویم گفته بود خرج خانه را کی بدهد نمیدانستم. معلمش آمده بود دم در خانه دبیر تاریخش بود بابا را می شناخت من تازه برگشته بودم از مدرسه به مامان گفت رامین مدرسه نمی آید. من دویدم توی خانه، بعدش مامان آمد تو، میلرسید من گفتم رامین گم نشده مامان، نترس. ترس، دارد اسکمو میفروشد. مامان خودش را زد، گریه کرد، رامین که آمد زد توی گوشش. گفت من دیگر نمیتوانم میروم پیش مخصن. بعد از خاله رفت بیرون، شب شده بود، مامان نیامده بود هنوز. رامین می ترسید، گریه میکرد صورتش داغ بود. گفت حالا من چطوری تنهایی بزرگت کنم گفتم من خودم بزرگم گفتم نترس مامان برمیگردد گردد گفت بر نمی گردد بغلش کردم خوابمان برد صبح که بیدار شدیم مامان صبحانه چیده بود رامین می میگوید میتونی مرخصی بگیری که تا اینجا هستم یه سر بریم رشت عمه بهونهتو میگرفت یعنی می گی دامه داه تجد نظر رو ننویسم بنویس نوشتنش که ضرر نداره بعدش بریم دلم هوای امه را کرده. هوای دست های چروکش را. همه عمر تنها ماند با مادر جان. نه شوهری، نه بچهی. خودش بود با یک مشت عروس که هر روز می شستشان. وست دارد مثل مادر جان. به دردش نخوردم هیچ وقت. رامین اما پسر نداشتهش بود. رامین پسر خوب همه است. داشتیم از رشت میرفتیم رفتیم. امه سرش را گذاشته بود روی پای رامین و گریه می کرد. دستهایش را گرفتم توی دست هایم. گفتم مرتب میاییم بهت سر میزنیم. نرین. تهران مار داره. ماشیناش تند میرن. نه ترس امه. موازبیم. نرین. اینجا مگه بده. به مامانت بگو نرین. پشیمون نشین. نگفتم به مامان. گفتن نداشت. امه همیشه از همه چیز میترسید. کاش مانده بودیم رشت. همانجا میرفتم دانشگاه قصه اش چند روز طول میکشید یک هفته دو هفته یک ماه به جایش این روزها را نداشتم دیگر هیجان کندم برای چیزهای بیخودی حرس جلو زدن از بقیه دیوانم کرده بود رامین نشسته کنار ماهان با هم حرف میزنند ارسلان اخمایش را توی هم کرده شبانه نیست آشپزخانه از تطمن کنار ارسلان مینشینم. ارسلان جان شماره حسابتو میدی فردا بقیه بدهیم و به حسابت می ریزم ندارم رجا بزا بری بعد ازت می گیرم تو خیلی به من لطف کردی الان دیگه پول دارم اگر هم جایی کار سراغ داشتی یلویم تیر نیکشد بقیه اش را نمیگویم. هنوز سود است برای دنبال کار گشتن باید چند وقت استراحت کنم ارسلان حواسش نیست ناآرام است آریان با ماهان و رامین بازی می کند. رامین می گوید بیا با این بچه حرف بزن من که نمی فهمم چی می گه. بچه را ندارم. صمیرا هم که عین خیالش نیست. دارد تونتون با لیلا حرف می زند. بهرنگ با لبخند احمقانه ای نگاهش می کند. معلوم است که چیزی از حرفایش نمی فهمد. از فارسی فقط سلام و احوالپرسی را بلد است. آن هم اگر آرام و شمرده بگویی. میخواهم بفهمم اگر نمیرفت رفت بود یا حالا که رفته. یادم باشد ازش بپرسم. آریان به فرانسه داد می بد جنس. پرتقال ماهان را پرت می کند. ماهان بلند می شود. شبانه را صدا می کند. می توی آشپزخانه نیست. سمیرا می گوید. پسر خوبی باش آریان. لیلا به من اشاره می کند شبانه را ندیدی؟ ندیدم. ارسلان هم روی کاناپه قرمز نیست. موبایل زنگ میخورد. شمارش عجیب است؟ برمیدارم. روجا چرا گوشید از دیروز خاموشه؟ نگران شدم کجایی؟ میسااق است. چیزی نفسم رو بند می آبرد. پشتم یخ می کند. به لیلا نگاه می کنم. سمت من میآید. الان میشنود صدایش را. قطع می کنم. لیلا دست ماهان را می گیرد. بیا ماهان، شبانه جایی نرفته، همینجاست، الان روژه صداش میکنه دنبال شبانه میگردم، صدای داد ارسلان را از ته راه رو میشنم در اتاق لیلا را باز میکنم شبانه روی تخت نشسته و هق میکند روی لباسش شربت ریخته ارسلان ایستاده بالای سرش موهایم رو مشت میکنم توی دست ها چه خبرتونه؟ ارسلان در را با دست نگه میدارد برو رجا خودم میارمش لازم نکرده بیخود خود میکنی سر شبانه داد میزنی اونقدر شور نداری که بفهمی اینجا جای دعوا کردن نیست برو بیرون معطل مانده دندانهایم رو به هم فشار میدهم گفتم برو بیرون نمیخواهد اما میرود در را پشت سرش میبندم یک دستمال میدهم به شبانه بریده بریده نفس میکشد میگویم خجالت نمیکشی الان وقت دوا کردنه مریض شدم روجا هرچی میگه گریم میگیره عصبانی میشه گریم میگیره برام گردم بند میخره گریم میگیره مامان ای زی میزنه گریم میگیره موبایلم زنگ میخورد میساق است شبانه بلندتر حقق میکند برو صورتتو به شور تا برات لباس بیارم زود باش بلند شو نمیتونم ماهانو بذارم پیش مامان دستش را میکشم و بلندش میکنم در را باز میکنم هلش می‌دهم توی دستشوی کنار اتاق. تلفن را جواب می دهم. صدای می دیر می رسد. از خیلی دور. حالا صدا میاد. خوبی روجا؟ بهتری؟ گلویم درد می گیرد. خوبم. ده بار زنگ زدم. گوشید از دیروز خاموشه. مردم از نگرانی. چی کار کردی؟ هیچی هنوز. نامه را فرستادی؟ به کسی گفتی؟ نه. کجایی؟ میخواهم بگویم خانه شما. نمیتوانم. گلویم باز تیر میکشد میساق تون تون حرف میزند. میگوید تو میتوانی. درست میشود. میگوید من مطمئنم. میگوید نگران نباش. میگوید فرانسه را ول کن. به یک جای دیگر فکر کن. خودم کمکت میکنم. شبان منتظر لباس است در کماد لیلا را باز می کنم میگوید می هستی؟ چرا حرف نمیزنی؟ کجایی باورم نمی شود کمود لیلا پر از عکس های است عکس که هیچ وقت ندیدم همه در قاب‌های چوبی اندازی هم. از کجا برده اینها را؟ هزار تا میساق در کمد است. همه با هم با میساق پشت تلفن میگویند. گری کن رو جا آرام میشوی. هزار تا میساق در هزار جای مختلف. روز اول دانشگاه با شلوار جین روز اجرای لیلا با پیراهن مردانه روز اعتصاب با کلاه فرانسوی کوه با لباس ورزشی انجمن سنفی سفر تبریز عروسیشان سفرهایشان درخت خواه در مهمان میساق صدایم میکند روجا میشنوی؟ کجایی رجا؟ خونه شما روبروی هزار تا از عکسات. گلویم تیر میکشد دهانم تلخ میشود درد تا چشم هایم بالا میآید دماغم میلرزد دیگر تمام شد نفسم را رها می داغیش صورتم را داغ می کند. قطره های مایه گرم از لای پک های فشرده شدهام راه باز می کند سر میخورد و میآید پای تا زیر گله